آله قیل مرسومی و لعنت دائم باز خواهد شد و لعنت دائم حتی مجمعی اللهم حتی مجمعی و رحمتی که و الحمد از چکه رجب در باقی خوجیت خبر با آیه ندر آین مصورین ما های زیادی فرمودن که انصافت خیلی هاش حتی در های مفصل حتی سنت هم نیامده اون جمعه بحثی رو که مفتر کردن که از کلم این بحث قدیمیست و اصولا مکتب عملی گرام مفتر کرده راجبه این هست که برپرس هم برای آیه مفترمی باشه و بگه خبر حدل لیکن در ما نحن به خصوص قرینه هست که این مطموع و جخنیز اون زید آیه هم توصیب و من به جهاله و توصیب و علامه ها نادمی از این زید استفاده میشه که اصابه قوم به جهاله مطلقا چه در خبر قاسف و در خبر قادر جایز نیست و لذا خبر آدل در جایی که منجبه علم و سوب بشه قبول به الله فرم این خلاصه اشکال حسن کردیم که یه روز توضیحات مفصل رو عرض کردیم و رو با تعریفات استاد نیسا توصیه دادیم که در حقیقت اینجا دو فاق بقیه هست بنابرای ثبوت مرحوم یکی لا تباییم فی خبر عادل یعنی یقوی بر خبر عادل خبر عادل مقبولون و یکی هم برای از روز حسابت و قوم به جهادت این ممکنه که قائل بشیم به تخصیص بگیم که خبر عادل و برای احتمال جهد یعنی احتمال ازم مطابقت توش باشه جهد توش باشه پس تخصیص بزنیم عموم زید این یک راه متعارف. راه دیگه چه که به حکومت بشین و بگیم به این که مفهوم میگه عمله به خبر عادل عمل به جهالت نیست حکومت بگیم من و من آزیا بر حکومت اشکالی کردن و نتیجه گرفتن که باید تخصیص باشه از اون این تخصیص مستحجنه چون موقع عقلیست که اصابه قومت به جهالت درست نیست البته شارن برمونده بکنه حکم حمدن هست زواهر این تعابیر اعبار از تخصیص در این خلاصه ای اشکال که دیوز ارز شد مرمو موسیقی جواب که حکومت گاهی به نحو توسعه هست گاهی به نحو تضییه که صحبت شد و که یک نحو دیگه حکومت هم هست به تقلیل ایشان ما اداتانم موضوع به نفسی قابل نحو خود موضوع آگاهت بلای احتیاجی، یا لحاظ اثر شریعی نمی‌خواهیم، اثر شریعی رو نگاه بکنی لذا تأمید به لحاظ اون اثری که بی نقص است، یعنی باورشون اثر عقلی. و در ما مفهومی اگر مکهم ثابت شد، معناش این است که خبر عادل بیان. چون یه دنبال خبر خسرب برای بیان بری این یعنی خبر عادل بیان. اگر خبر عادل بیان شد و ایران شد، این خودش اثر داره. اون حجیت ذاتیه ای دیگه احتیاج نداره که این آیه رو به همانه حکم شرعی نگاه بکنیم خودش اثر داره اصلی که داره این است که اگر خبر عادل ای میشه منجز میشه و معذر میشه منجزیت و معذریت یعنی حکم منجز میشه یا اون به سر خبر عادل منجز میشه و معذر وقت اگر منجز و معذر شد یه اصابت القوم به جهالت خود به خود نیست می این اینم یک قسمه از حکومتی که با تعبط خود به خود موضوع برداشته بشه. ایشون روز بعدم ایشون فرمودن که در آخرش و منحاز النوع من, من الحکومه حکومت الامارات علال اصول عملیه و حکومت قائده الفراغ و تجاوز علال اصول جاریت به شبهات موضوعیه که این بحثی که چون اینجا فرمودن چون من که دید بحث می دستم اتو بشه در اون بحث آزه فراغ و تجاربز اونجا حکومت رو جرزی کردن. این رو حکومت قرار مردن. این رو گروس برای مردن. برما الان فرمودن این بعضی فرمیدن خبیده. اصلا که این مطلب می رو که ایشون دسته سطح فرمودن خوب. این مطلب اولا یک مطلب خود فرزی خودمان هم درم. می خواستی این خود ایشان قبول که قضیه محروم نذاره نه به دعاظ نه به دعاظ محروم وشم رضایی ما سنخ بحثا و بحثای میشه بحثای فرضی ارزش علم نذاره علم خودش تصدیله بحثای فرضی نه به تصوره هیچ ارزش علمی نذاره چون ایشان تو گفت محروم قابل نیستن که برای محروم تعارض بوده این چیگه؟ تعارض در اینجا حضرت تعارض بین محکوم و عموم علب عمومی با من. وقتی این بحث بحث که به عنوانی تعلید آن وقتی محکومی نیست این وحث تنظیح سرفه، سه شهر سرفه وحث تنظیح که به اصطلاب تصور عشبهه تا علم این یک مطلب و نقطه شن خب این بودی چون این بود اینجا افضلیه شرکیه مصروح برای به هم موضوعه این بحث که پیش بیرد این صحبت مطلب که ایشون در همون بحث خواهده فرام مراجعه اتفاق کنیم تون ایشون بین ورود و حکومت رو اینجوری که ورود اگر به نفس تربود موضوع دیگری خارج شد این وروده به اما اگر دو تا تحبوت خواست تحبوت یکی نمید یه میشی که روزه یکی برامزا اون و اون حکومتی مثلا در باب استثمام اشون میگه در قاعده فرام یه تشک با که نیسته بشه بیترشه. مثلا اگر میگه شما اگر جد جایی شک کردین فا انتا آلمو اعتبار میکرد گفتا آلمی و اگر گفتا آلم ویدیوی شک میسید خود به خود لاتن خود یکی نمید شک میگه شک ندارد اما نبا انتا آدم گفت فشک کلی که میاد بینید یا توی شک کار میکنه یکی این شرط ارزشی نداره اگر این طور شد لسان لسان به اسطلاح حکومتی این چیزی که ایشون اونجا به تصدیر خودشون ورود حکومت نیست اما مگر اینکه که ایشون گفتن قسم از حکومت یعنی ورود گرفتن الان این تحبیر ایشان دارن خودشان، اما این رسمش ورود گذاشتن اگر به نفس تعبوز خارش این یک مطلب دیگه و یک نقطه دیگه در کلمات ایشان که این اصطلاح حکومت با استلاح خودشان جور درم این تخبشون حکومت ورود یه استلاحی که در کلمات ابدیه آمده لا مشاهده برسته لا میتونن اصطلاح رو هرستن لکه که به متعارف خود ایشان نه حکومت این هم نقطه دروند و نو تیه این نفره از تصرف رو بقدر رو کنه من آدم میگه این تخصیص مستجنه خب همشون که تخصیص مستجنه حکومت مستجنه داره که فرمو مثلا اگه هر کنه علمه ها جای آدمی که خیلی رو رو با اینکه خیلی هم احمر رو کارویزه شدیم بکنه نامیز بکنه باز این هم آله. می‌خندید چون ریشدرو عالیه خب الحاق کسی فقط به اون شخسی که ریش داره به علما با در نتیجه قابل جونیومیزه که در میشه و شرایطی معنیده خب یا شیخ حکومتیه خب اون یکی رو تا خب علی ریشداره که اون یکی که کارایش میشه این رو من آگهی قرار میدم حکومت هم مستثن نباشه چه فرما ترجمه بگم از ما باشه اون رو باید, باید تخصیص مستعجم و به کد مستعجم فرمی در اینجا هر اگر در اینجا نقطه نقطه یه اقراریسی برد می شود که ارشاد برکنه هم. اگر نقطه نقطه حقیی اصابت رو قوم به جهاده وقت حبر آدلی که یک آدل آدم خوبیست مطلب اینه حبر کرده که انواع به اصطلاح احتمالات این کلام هست ولی خبر صحیح سورا نمو گرده از ها همه نگرده محل در کلام اینه دیگه یه نفر آدل یه ن حتی سغه عادی میتون خبر میده و تمام شواهد بر خلاف خبر ایشونه بیاد دیگه این جهل نیست اون خودش مسلحه باعث جهلش این جهل نیست اون جهل چیزی شخودم گفتم که این مسلحه باعث بشه اگر موقایای مبارکه بله مثلا این اینجوری باشه اگر خبر عادی فاسد بود تیوم بو بکنید و عجله نکنید اگر باشه مثلا خوب میشه در خبر عادی مثلا معقول بشه همه وقتی بگه هم تصویب و, و, تصوی و علام به جهاله و تصویب و علا ما و حکم عقلی هم هست من از آلکی بیاد بگه خبر آده و رو شوابط برخلاقشن شما بگه قبول بکنیم انصافت این حکومت هم مستحضره من این حکومتی که جمعزانیشون قالده هم و بعدش هم در مثل این جو هایی که پریبیت یک اختلاف اساسی ما با آلوم داریم بینات کنون حکومت و تحوز و رو در جایی که پریبیت سرف رو تصور ما که اصلا هم تصور میکنم خب یک اشغال هم پس بود و من حالا بعد نقطه من که می کنم کنم چون تمام این برس اما آن ترضیه برس پرسیه از اختلاف من چون بعد از نکات فنی گایی وجود داره از این جرس م یه اشکال دیگه‌ای هم شده البته چند تا اشکال, اشکال مجموعه اون جزء فرع بوده، لكن مفهوم اشکالات در کتو متأخر ما بیشکینه، یعنی ای که چه حال بشه، چه زیاد میشه. من نگاه هر مشی ذهن من که حال بشه مراجعه کنم فایده هم نداره. وقتی وسرش کلا من, داره. کل ای من, من فقط این مرحله کنن، فرج به خاطر اینکه دوست موسیقی فنی که در هر چه به این جنبو تعریض میشه، و خود بحث بنظر ما یه بحث عینیه. و قدیستش که داری من علاقان مفهوم ها که من علاق تحلیل دیگه اشکال از وجه به و مفهوم متفره هم علاق منطوق یه رشته طولی و عرضی داره و اون نطقیه اینه که تحلیل نمیشه نسبت تحلیل رو با مفهوم بگیریم چون مفهوم به اصطلاح مدول اتزامی منطوقه اول منطور و بعد مفهوم اما در اینجا عمومی که داریم این عموما به سیه تحلیل آمده تحلیل درد بگنیم مثلا اینجور من بروندن که خبرفاسه غیوتبیم به قاضی کبروی و لایجوز رو از اعتماد نه یک قاضی کبروی و قاضی آمینه بودن لایجوزه و الارتماد از جهاله این رو به عنوان به اصلاح تحلیل بودن چون با عنوان تعبیه عادتن علت مقدم از ظاهر بر معلوم یعنی چون اس تابع او به جهال است او در خبر خاصه چون علت مقدم دیگر و اگر این علت آمد این علت محترز و یعنی علت میشه این علت میشه برای تبیین خبر خاصه از از وجوب تباییون خبر فاسق در میارید ادم تباییون در خبر قادم پس این متأخر از منطوقه پس یک منطوق داریم خبر فاسقی یا خبر یک علت داریم لایجوز و حسابت و قوم بشی خواده این علت که از خواهدتا بر منطوق مقدمش یک محفوم داریم اون محفوم بعد از منطوقه چون محفوم اتظامیه چیزی که بعد از منطوغه نمیتونه بیاره حاکم بشه برای علت که اول منطوغه یعنی به عبارت اخراب ما اگر بخوایم کلاقا را منسجم بکنیم علت مقدم است علت اصارات القوم بجوانه معلولش معلول این علت از تبیم فی خبر الفاسد لازمه این معلول عدم و تبیم فی خبر عاده این لازمه معلوله مل... و چون معلول رتوهتا متأخر است از علم ما در اینجا نمیخونیم بگیم این چیزی که متأخر است رتوهتا که اسمش مفهومه حاکم بر علت که اسمش بسا تعلیمه عموم تعلیم روشن شد این این اشکال بعد ایشون فرمودن باها برای اشکال مردودون به وجود ال اول این که تأخیر مخموم از منطول فقط در مقام کشفه این تقدم و تأخیر نیست در علت در خلصفه گفتن اون نعمر واقعی است تأخیر علت دون فتر اینجا فقط تو مقام دلالته یعنی اول ما منطول داریم بعد مخموم فقط همین و اله تقدم و تأخیر روشی در اینجا نیست یک مقداری ایشون این شهر دادن که با من بیشه می کنم خداهای مراجعه بکنم با شرقی که ما دادیم این مطلب ایشون واضح میشه علاقه ایشون بی هم این نقلی که من صادقا شهرزان شهر و سرشم بشم همینی که خیابی این اشکال من صادقا از کلم خود دقیق کنیم اصلا بحث محفو در حقیقت این است که بعضی از الفاظ یا بعضی از حیات در لغت عرم به گونه ای وحس شدن که دارای دو معناست رتبه ها داره مثلا ایگه دی هم هم نداره مثلا این دربارات عرب اینجوری وضع شده این وضع شده همه اثبات می اون چیزی که ذکر شده همه اثبات کنه نقطه ای که ذکر نه این که تقدم و تأخر داره یکی علت یکی معلوله. اینا در ذهنیتشون خیال میکنن که اگر اینجا گفتن مثلا تربیر به التزام کردن مالا نه هم مثلا اتضام و تأخر و تقدم و دیارت نه اصلا اونا نیستی شده بعد کش و دلالت هم نیست این چیزی که بیان بعد کش و دلالت بعد کش و دلالت دلالت این معنا تک وی دلالت به معانی بعد بله اصلا یعنی این اگر در لغت عربیات دو تا منظور رو می‌رسونه نهایتاً یکی مستقیمه یکی غیر مستقیمه من یک حد متأخر رو می‌گم لذا اگر غیر این عبود این معنی فهمیده نمیشه اگر این عبود گفت اگر مهمان آمد نان بخر این عبود پسش میفهمه که به سر سلطه هر وقت مهمان نیامد نان نخر اینم پوش هست که مثلا اگه یه روزی روز جمعه بود مثلا نان دایه شده بود دا گامه یه چون تو گفتی اگر مهمان هم چه مهمان هم و مراده از دلالت یک دلالت عرفی لغویست که بر او می شود یک بار رجت شرعی و قانونی باید کرد این مراده یعنی یحتج جلولد علاق واده به این که تو گفتی اون نخده بود اگر مهمان آمده بود مهمان بود با نخده بود مراده از حجه یعنی ما یحتجو بهت طرفانه علالآه این مورد از حجه اون از این مراد اینه که خود عداد شرع یا خود بیعته ناقصه جمهوری ترکیب هیئت نا ترکیبی ناقصه جمهور است و توصیف و اضافه خود این دلالت بر دو معنا میکنه یا نه دلالت بر یک معنا میکنه بحث ملازمه نیست بحث تلازم نیست بحث تقدم و تاخر است حتی اینکه ایشون تأخر در فهم ده مفهوم در ماهام کش مگر بگیم ایشون مرادش از کش ملفوظ نیست فقط فرقش اینه ملحوظ نیست نه اینکه که نیست وقتی میگن جمعه شرطی محکوم داره هر دو منا در میاد بله ممکن است کسانی در باب جمعه روش دیگری داره محروم. اون بحث دیگری نیست از تقیل پنج را من از وجود داره, داره. اون را که اساسا در من محکوم و قبیه و اون اساساً مراده در دخش من مباری تعداده و وضعه این که این لفظ برای دو معنا بقید یک معنا ابتداعاً گفته شده یه معنا یا هنوارشی اینکه این که تأخیر هر دو یک لفظ باهید و این هست یک اشتباهی داره پس به تقدیر ایشون تأخیر در معامه کشف به تعبیر ما تأخیر نداره بله تأخیر تأخیر به این معنا یکیش مستقیم مستقیمه یکیش مظلول هست اما از لط مستقیم نیست بازم مظلوله فرم نمیکنه. کنه کما این که ما خیلی از مطالب رو الان در ارخی میگیم در ارخ زمان ما یک معنی خاصی میار حتی مثلا در جمهوری اصداری تو ایران میگیم یک معنی به زنی یا توی افرادستان بگیم معنی دیگه تو پاکستان بگیم معنی. فرم میکنه کنه معنیش چون نظامش فهم میکنه اینطور نیست که لحظ همیشه همون محلوزه لحظ اینا میخوام هم بگن که در روحات عرب هم همینطوره. ممکنه یک لحظ به زاره یکیه اما این تو روحات عرب که ما به شواهد نگاه میکنیم دو تا معنا داره نه یک معنا یک معناش شه ثبوته اندر ثبوته و معنا شه نحیه اندرنت یا محل این در وقت این در وقت اینقدر این, این مطلب یا لفت وضع شده یا ظهور داره آقای خوبی بیشتر ظهور رو گرفتن یا ظهور داره به هیچی که در واقع اعتبارات قانونی حجت میشه و چیه؟ پس ما که در اصول بحث میکنیم زیربنا دو خطه و قرفه از زیربنای لغتی و قرف میرسیم به عمر قانونی عمر قانونی شما در حجبیت می‌واد چرای روزا نغذیش این دیگه بنا ناویو جو تعظیم میگه شما اگه مهمان اگه مهمان باشه روز میهمان đãi روز نغذه این اگر مهمون آمدن بخر این برای هر دو طرف خیاعت می‌کنه خودش مثلا چه حال سراغ این راهی رو که راه گیره اصلا تقدم و تأخیر مثلا نیست ایشون در مقام کشف و دلالت گیر خودش مثلا بله به بل جواب دوم داره که اگر محکوم به نفسه متعکر باشه از حکومت به مرحله اول مانعه نه حکومت به دوم و سوم بله این جواب سوام بینشان خیلی عجیبه که اگر برفن در تأخر هم باشه این درجه است که حکم باشه اما در معنه ارشادیه اما اگر دار کان تعلیل ارشاده لمایت به هم چرا چون حکم عقل دیگه تقدم متعخر رتوی نداره همراهشه این طور که از این مقدم باشه رضبطن همین که بمتبین و همراهش هست لایز اصابت القوم به این لایز اصابت القوم واقعا با همون موجوب تبین هست نه اینکه که مثلا متقدم باشه برش رضبطن خب اینم جواب سوم میشون اصلا که اجماع قضیه پیشون باز هم در اینجا ارشادی گرفتن و ما از کنین توضیحی داریم این بهتر رو کلماتی که مستنبه از اینجا تا اول از اول خوب درداریم تو که من پنج نقطه رو ارز کردم در استدار وای مبارکه ما باید اینها رو یکی یکی بیان میکردیم که آیا این مفهوم مولدیست یا با آیون یعنی حکم تعبدیست یا حکم تعبدی نیست آیا این تعلیل حکم تعبدیست یا ارشادیست آیا تا اینجا با دومت دومالشی میگیم آیا اینجا آیه خوبی می کنونم این ارشادیه ما وقتی وقت مرادشون اند. ارشادی مراد حکم عقل چرا حکم عقل گرفتن؟ چون خود جیهت و عقلی می چون حجیت جیهت و عقلی می و قص و حجت ذاتی می این رو ارشاد به حکم عقل گرفتن حالا برگردش حرفایی که ما در این چند روز عرض کردیم ما عرض کردیم نه آیه مبارکه حکم عقلی و نه حکم است، و نه تحلیل، همه اغلایی هم چون حکییت شما اغلایی میدونی خدا همه واقعا <تصفيق> در اینجاست خب اگر این مطابق که خیلی راحتتر او دهگی هایی بخصه طولایه هم خود تبین در خبر فاسد اهلی نیست تحبودی هم نیست آنین در تلماتشون ما بین مولوی و ارشادی گرفتن هیچ کدوم نیست نه مولویست نه ارشادی اغلاییست ارشادی گفتن عقلا نیست اصلا مقوله حجیت چه روان است این مقوله‌ای است که در دایره حکم امر قرار نمی نه از نظر نه عقل عملی مقوله حجیت دیگر نوع اجتماعی و عقلایی است و تابع خاصیتی است که در هر ای وجود داره کم و زیاد میشه بالا پایین میشه در یک جامعه ممکنه به نظام‌ها اعتماد بکنن یه جامعه نکنه چی جون من به درک اینترنت یه زمانی که اومد گفت چه جایی به خلل فاسد اعتماد می‌کنه این مفهوم اوغلاییست این مفهوم عقلی نیست معنا مثلا یه پدیده عقلی و یه به اصطلاح ظاهره عقلی و اوغلا و ظاهره عقلیه و از ظاهره شرعیه شرعی یعنی در خصوص شریعت و حادثه یعنی اوغلاییست تعلیلش میگن رو اوغلاییست خود اصل حکمن چون اثرین به و به اصطلاح شارع عین عادت تعوذ نمیکنه میخواد یک رو گوشزد و قرا بکنه از کلام انچرا یعنی که در واقع هم ذره بو اصطلاح اطمن یا اوکننه ها کارو داره یعنی یه چیزهایی بشر در زندگی خودش داره شناخت خبری راههایی داره چیزی رو که شارع میاد تنبه میکنه و تعوذ هم نمیکنه ما اینکه تعوذ میاد میگه آیه از جهات دیگر راه سوه سلوک داره و احماض شما نیست این توی خبرش هم اثر میگذاره و این که متحرض از کسی بالاخره احتمال اصابه این که به, به اصابه جهالت باشه وقتی میدونید این شخص اطاعت خدا نمیکنه این شخص خاصه این شخص از داره اون که دوران بگیم تعبد نمیکنه کنه و به نظر ما بکنی شاید شما همینه که این تحلیل آمده به جای بحثه قائم در تحلیل کردن رو تعریف معارضه رنده معارض چون مفهومی نیست که معارض باشه معارضه فرض وجود مفهوم این تحلیل برای همین منطوق مفهوم هم نداره هم منطوق و هم مفهوم هر دو اوغدایی هستند اینطور نیست که مثلا حالا جریجر کرمانی باشه این هرگاه حکومت و این هرگاه پیش هشتالس دومی شده کلن از فهمم در این نکاته پنی که داره متعرس می میشن اینجا تیجه گفتن که اگر مراد از تبریان خصوص علم باشه عمل خبر عمل به علم نه را فاسد و اگر مراد به و حیث و عمل به علم الوشدان واجبان عقلن ببینید تمام زیر بنای بحثشون اینه واجبان عقلن ما این واجبان عقلن نرابنید تمام مشکلی. و کانل اول که آیت مبارکه ارشاد خود امر تبینه و هم ارشادی گرفتن ولا ارشادی به استفاد مفهوم امر ارشادی خلا مفهوم و یعنی به تبین مجرد الوسوق مجرد الوسوق یا تنافی بین مفهوم و منطوع چرا؟ چون بای اوقات خبر فاسق و وسوق میاده بای اوقات خبر عادل وسوق هم میاده عموم تحلیل نمی کنه یعنی به اصلاح بگه مفهوم حجته دار بدایون در آید خویی جواب فرمدن و ها در اشتار غیر و غاردن حالا لال بالآیه من این ها داره شما هم سوا امکان المراد من التبعیم خصوص علم و مجرد و ذاره که لعنم و امکان المراد خصوص علم لا یز زمن و انتفاع و مفهوم از فل ال امرون بل علم بل عمل بل علم و آیه در دنبال عمل نیز ارشاد شما به علم نیست لیکن گونه ارشاد لحاظ من آگ کش ما بلا امل میکنیم بل امرون به تحصیل علم اند ارادت ال عمل به خبر الفاسد مفاد آیه اینه شما علم ایجاد بکنید وقتی عمل بکنید به خبر الفاسد و مفهوم عدم و وجوب تحصیل علم اندل عمله به خبر عادل حالا غیر از این خود این شان آیه جوری معناه کرده که محبوب نظره این خود اینجا رو باید نگاه کرد که مفاده آیه مبارکه تحصیل علم اندل عراض این اراضت العمل از کجا آمن تحصیل علم اندل خبر الفاسه اندل اراده، العمل در خبر الفاسه کجا آمن بعدن اگر بخویم عمل بکنیم علاوه برمی هم بخواد برای ثابت بشه این میشه و مفهوم عدم تحصیل امر ان در اراده برای عمل به اصطلاح به خیر خبر خاصه ولی اینطور میشه یعنی وقتی خبر خاصه نبود خاصی اراده عمل بکنی که چون خبر نمیجستن تحصیل امر سوال اول به موضوع ولذا مفهوم نداره یعنی که مفهوم نداره نقش نمی کنه در این حالت این یک معنای جدیدی هستند های یعنی باید بگیم که آیه مبارکه که انجا به نبع و عرب شما عمل به و انجا افا رو به نبع و که اینکه اتفاق نیست آی مبارکه این معانی که ایشون بله خیلی عجیبه بعد امکان هم مراد موجب الوضوح من فعل دو دوتگایی که مختص دره مراجعه دیگه مناسب نیست بعدم بیترسیم مثلا هم بشه برای تصدات اشعار در استاد من از این کار فیده خوشم در مجرد الوسوع لا تنافی بین المنطوق و المفهوم اصلا هزمخت از المنطوق و, و خبر فاصل الموسوق ده خب بسیار ولا کلام فید اگر در خبر و مخت از المفهوم و و خبر عادل به انلم موجب به رسوع خب این تعارضی نمیشه بین این تا؟ عجیب ارزش خب این معنیشه اینکه قاعده بیان مطلق قرار داده نشود دیگه خب چه جای عجیب ارزش قلنا عن اعتراض المشهور لا يوجد سقوط الخبر که گفتیم خلا محظور از یوخذ از مفهوم علی خب این مفهوم با قول خودتون مثلا تئوری فرض کنید تابع منطوب که منطوب محذوف بشه مفهوم هم میشه فهمه. یعنی این فتح و و تحلیل این اختزاره می که منطوع هم بشه بله به این قول ما به انعراز المشهور یوجب و سقوط عن الحجیه فیال فعالیت ان اطلاق المفهوم و یقید به ما الاله یکن کنیم ما ارزن ان اندل هم مفهوم به اسم منطوع تقیید می چون خبر فاسه که سقومده خارج هم مفهوم تقیید میخوره و ولی سفیه تناف این بین المنتوق و المفهوم ولا احداث قول این سالس من البته نه فنزالشون چی میخوانم بفهموتن چه مرادی ایشان هست خیلی بر ما واضح نیست خب بحث تره هم اینه که خبر آده به ما خبر آده رو خب جد نشد دیگه باید رسوخ پیدارش شده این کلاف ممنونه ایسی اراده شده از این ممنونه ها دا کلون مضافن الا انهو لیس المراد من التبیون خصوصا علم ولا خصوص هنگسو بلی المراد باید بل جامعه این حل مشکل نمی که ما که واضح بخواهدن اشکال سروه که بر آیه مبارکه شده که مورد آیه اخبار به افتداد بلی المسلمه ولا اشکال فی عدم صحت الاعتمال علا خبر لحد للواهل فی افتداد شخص ماه فرزن انه افتداد جماعت افتداد فعر می شخص جماعت اگه تباییون یا یعنی نه تعدد میخواد بگیری میخواد در هر دوستی این که چون زیاده بود بیشتره چنین نه دیگه. یکی یا میشود دو نفر از کافی کافیه. حالا مهرحال که چون فلوخانه از آیه شریفه مفرومان لزوم خروج جرموره و, و همه رو مستعجل. و مفروم شده جواب دادن که موضوع الوجود تبعیض طبیعی فاسده طبیعی فاصله فاسد یکی دو تا سه همه را نیست مالیا حد ثباته. خیاکون الموضوع فل مفهوم ایزند العادل و اصلاح او و امکانی اشمون و اکثریل و نهیار خصوص المورد در خصوص مورد عمل نمیکنه خب بحث همینه که عمل نکردن به خصوص آن مصدع نمیشنن آن یه چیز غریبی. همون اشغال با قبول میکنن ویژه خبرها از قبل میگن کی ایشون میگه رقیعت میکنن خوراک کردنش ید ان الاطلاقی خصوص مورد و یا غیر در خصوص مورد به متعدد یا لیسه که اینکه بوجود مورد ان المخموم شبیه این مخموم شما اگه مستعدد اینکه مستعدد شبیه این اشکالی که در وجه دوم بود مروم ها به مروم شیخ میکنه که مراد یا علم هست یا حساب هست همون راه که گذاشت آی خویم همون جواب قردی رو میدن وفیه ماتقدم من انهو لوکان المرد منتبینه لعلم لا یلزن خون الانفل آیه ارشادیه از الواجب اقلا ول علم عملو بالعلم ول مصطفى دونالآیه تحصیل رو لعلم تیگه عزیبه تحصیل رو لعلم این لا علا عملو به وقتی میگه تبینه برای تحصیب تر... و من به جهالت تحصیب و آقا میگه برای عمل نیکنس خوبی خلا بذارم بعد ایشون سانیان تبیان مذکور در آیه وله به معنای لیسه به معنای علم تا عمر ارشادی بشه ولا به معنی وصول بلی مراد منها معنی لغوی با هو از ظهور بعد دنبال این بحثه ایشون انجام میدن و آخرش هم میرستن که نعیش کار و ته هسته لعن نعدم سه حقیق اعتماع حالا خبر فاصل موصول مورد آیه این نماوه دلیل رو لده از دل اعتبار بیانت شرعیه پیمسته فیستک شکنه این که این تبیان نیست انشاره لم یعتبر رو ظهورن تبر قادم رو ظهور حساب نکرده فلی سفی و خروج و انلمنتو خیلی واضح اگه لم یعتبر رو ظهورن چطور بشه مورد رو خارج رو اینم خلاصه یه حربی که افرمون استاذان دیگه چند کلمش رو کندیم بقیه شو آقای مراجد از کم خضوره خلاصه بحثی که در این هست با این طور تفصیلی که گفته شد به ذهن ما میاد که این آیه مبارکه یک ای مفهوم واضح غرفی داره توش هیچ خفایی نداره و هیچ نحو تعبد خاصی در آیه وجود نداره و در سیره اوحلا اصولاً عمل به خبر یک عمل متعارف است. این در زندگی بشن ملی است از, از شواهد عمل به اون چی که در اینجا شاره نکتهی رو بیان فرمونده همون نکته است و اقلاع رو تنبیه داده اش آشنا کرده گفته آقای شما وقتی که از پاسه رو گیم میبرون مقدر دست به چون خدا رو در نظر نمیگیره از اون فسط علاقی خارج رو در بیر خبر در خبر اون این احتمال هست که ایشان خلاف به واقع گفته باشه این خلاف واقع پس کس به و فعلتم نادمی این جرد باشه روشن نباشه لذا شما به دنبال بیان و از ظهور برید به دنبال شواهد برید تبین و یعنی شواهد اون چی که به ذهن ما میاد و اما این اشکال سوم که خروج مورد یا خود مورد این ما نقطه شو یاد مورد باید از در نقطه پنجم برم کرد و این مطالب تفسیری است یکی از مطالبی است که برمیگرده به قرآن به نظر ما این شوره باید همه یک نواق نازل شده در این قصه حالا قضایی و مصطلم این آیت تطبیحاً نازل شده نه شعن نزولشی نه مرد نزول این تمام اشکالا روی تصور اینکه مورد نزوله به ذهن ما میاد مورد نزول نماشه یک حقم کلویز شارع ارجاع میده اوغلا رو یک هم رو اوغلاوی به استفاضه اوغلاوی و این بحثی را که الان که توریان مراد علم مراد وصوله مراد جامعه کاملا وارد است مراد این توریون اون چیزی است که در نزد اهل بیان و ظهوره است و نزا چراران عرض اینجور چیزی شامل استفاضه میشه یکی عین بحث به اصطلاح فنی یکی وصور و و یکی هم علم عرفی که اصلای ظهوره وضوح علم عرفی وضوح آنی علم و یه شاهد گیر کن خویی مرموازی هر کدون یه چیز که این تبعیمش کار رو خونیم. این گیر نمیخواد تبعیم تبعیم یه همه رو عرفیست یعنی همه رو اغلاییست عرف اغلا نه عرف چهار به اصطلاح این روزی نگه دهاتی نه عرف اغلایی دهاتی یه عرف اغلایی مقبول که یک برای تنظیم زندگی از کرد حجیت اساس مبنای حجیت در دوانی و بلکه اساس مبنای قبول خیرد و مصلحه در علم در تاریخ در فلسفه در, در, در تا اون جایی که انسان میخواد به حبری اکتماد بکنه این همه یک ای عمر عرفی و اغلاییه نه ارفی بسیر و نه به حسب اصطلاح اون دقت اقلی سر یک حد وضوح یک حد بیان یک حد وضوح ارفی اوهلایی که در نظر اوهلا با شواهدی که هست از که این شواهد هم به نظر ما باید نورد دسته اوهلایی باشه اگر شخص یک حالتی داره این اینه ایمتدار میشونه اما ازش نداره این توضیحاتش گذشت افعق ات اتا و جور چیزا اونم عرضشی نداره هم ظهور عرفی وضور عرفی هم علم و هم به سابوسو در تمام اینها باید نوت در از از باشه نه عرفی عام عرف اوحلا روی شواهد روی و ازا این سر بشن این این آقوی به این بحث رو بکنه که تبیین ارشادیست یا مولدی، نه ارشادی و نه مودعی تغییر یک امر اوغلایی است چون این سمته از حجیت یک امر اوغلایی است متوارق اوغلا است حالا فرض مثلا یک نسخه از یک کتابی از یک فیلسوفی فرض کنید مثلا ارسطو پیدا کردیم اما این نسخه فرض ما مثلا در این کشوری ایران معروفه به دشمنی با ها وقتی عباراتش پیش هست که مثلا مضمت یعنی انسان قندش میگیره یه فکر این فیل فیلسو میگن این نسخه یک منطقه است که این ها مخالفه با این فلاسبه بودن احتمالا دستکاری شده این تعبدیز این تعبده به شما میگن آقا مثلا این نسخه ای که فرسم شما از اسفار دارید مالا سرزا این یک نفر شخصی نشید فرس فرس احتمالا این جای خود فرامکاری کرده <laughs> یک کسی که با این آقا مخالفه این امکان داره که فقط امکان داره که نصف دستوری کنه اندر ابواب خراب کرده، چی یک نفر که بخونه مثلا از ابواب متصلش اندیشی ببینم این در این حد این این والا بحث در این مطلب یعنی که اینجوری به شما بگن آیا کسی که خبری رو میده یا نوشته رو میده یا صحبتی میکنه شما یه خصوصیات مخبر هم در نظر بگی اگر مخبر از از رزاتیش این حالت داره که در مقابل خدای ایستاده حالت ترس داره ممکنه تو خبرشون بگه این نصیحه که ما این یکی این مکانیزمیه که زده بحث هست. این احتمالاً اینجا ما این نصر ببینید یک سفر مکی بودیم این ثانی متعصبی هم نمونجه بود این آیه قرآن خونده بودن مرسه و ارسل کردنش کرد در کعبه فصو ووز قرآن داش بوده من مثلا تو منادیدم اونجا قرآن خوندین قرآن شاپ ایران من این قرآن شاپ شما قبول ندارم. ما قرآن شاپ خودمون بیاریم ببینم نقش و شما را اجرا کردن اگر این باشه خب معلومه مست و رزق و باز این باشه، این شما هست قرآن شما است. مثلا چنین قرآن قرآن, قرآن, قرآن, قرآن سنی‌ها رو. بلیم. یعنی این متن هر چیز هم با قرآن یک شیعه نداره. نظره. میگه نه این قرآن شماست. احتیااره ارجوبه کردن مثلا این رو خب این آیه زوارد خیلی واضح من مثلا بروسه کنم این تربیه واضحه که سنیم بود بوده هم با باقیمون که در حافظه باید مرسه خیلی واضحه اما این قرآن رو بود هر به هر حال کنی که ما الان می از آیه اینا رو این کلام رو کسی بگیر دیگه کارم بحث دارم مثلا چهار روز انواع مدلول و مفهوم و منطق و اینجور صحبت ها من فکر میکنم مطلب یک مطلب واضح اغلایی نه عقلی است که ارشادی باشه نه تحبازی است که باشه یک عقل واضح اغلایی است که بابا اگر این کتاب مثلا قرارش یک کتاب کشور شیخ واهای علت سنیگری داره مثلا امام علیه کلم الله باشه خب میگن آقای این بعد جای چاو شده علون با شیخ بهایی است وقتی در این کشور سنی چاو شده این توش عبارت تموذیات کرده خب این طبیعی نیست این صحبتی داره این یک صحبت طبیعی که کلامی که به عنوان الی مقبوله چی می‌خواد قرن باشه چی می‌خواد کسابت باشه حتی عکس باشه تصویر باشه اون که جمعه یه که کاریت داره میگه یعنی این تصویر رو فلانی گرفته این فلانی از یک زاویه خاصی گرفته یا این توش دستکاری کرده این تصویر رو از جای دیگه باید ببینید تحیید این یک مسئله تعبد میدید یک مسئله مغربیه یعنی یک طریق متعارف و قغلایی که شاره مقدس دارن هدف شعره هم تعبد نبوده هدف شاره تنبه بوده که تنبّه پیدا بکن مؤمنین تنبّه پیدا از آیه‌ای مارکه اگر الذين آمنوا مؤمنین تنبّه پیدا بکنن که در اخبار فاسد چون احتمال کذب هست و اون متعرضه است کذبه در اونها بیشت تا وقف بکنن. لذا اگر این علامات به همین زاد عمل کرده گفت مثلا خبر ابان ابوم تو وافیه فداییه ندن اگر این مدار فاسد بشه شما برای از این حرف این شرط اینطوری این نیست. علایه حال به ذهن میاد که آیه مبارکه هیچ مفهوم نداره و الان تقریر این که اشعاری داشته باشه اشعارش به همون که اگر شخص عادله مثل بقیه سیر اولاییه در خبرش عمل بکنه و این درسته این مطلب اجمالا اینطوره در خبر عادل به طور کلی 20 درصد در خبرهاش ممکنه درش مشکل داشته باشه مشکل در خبر نباشه مال مسترش باشه از شخصی که نعر کرده باشه خودش اشتباه گفته باشه کسی که با ما از اون عرض ما همه احتمالات هست دقت بکنید در خبر فاسق 50 درصد احتماله از آیه مبارکه در نمیاد خب دقت بکنید آیه مطلق معناش این نیست خبر فاسق عادل رو شما 20 درصد رو حذف بکنید من حقم یک طرف است تو اون 20 درصد هم باید تعامل بشه ما اگر خبر زوار نگاه بکنیم در خبر زوار 20 درصدش مشکل داره یا ایراد اصحاب یا مخالف قواعد یا این سرکتش مشکل دارم این آیه نمید بوده نکنه نکته اینی این آیه میگه شما سردرتان خبر رو زران قبول کن این ده سریعی ما میگه نه از آیت ناظر به این قسمت نیست و نکات دیگری هم هست البته یه نکته هم کارس وقت گذشته من سریعا بگم نکته اینه که ما وقتی خبر رو قبول نمی کنیم لازم نیست رو از جهت اداره فس باشه تو این کلمه لازم معارض و جو معارض و لازم وعد اون محثر و شیگاه بذل اون کسی باشه که عادل از اون هر کرده؟ من مرغمارزی از این جهات که آیه بگه ناظر است فقط به کلام عادل دو ماه و به ما عادل. این خصوصیات ناظر نیست تا رو دربار حل بکنیم خب ایشون اینجا توضیح دادن ما این توضیح رو صادقن است که نکته لطیفه از همین اصلا اساس تعبد و خبر عادل همینه. اگر خبر عاددر رو تبد به ش کردیم تاارز بعد از تبدده. اگر تعبد شرقی پیدا نکردیم و فهم آقلایی شد تا آرز قبل است از ت بوده. پس این نقطه احسازی بحه یعنی اگر بناس قرار عادل موسیوب پیدا کنیم باید تارز اولا حل بکن. ترجب از بر مااضتهی جواب بدن این جواب هم درست نیست و اصولا ما از های اوواردکش از منطوبش بشه در مفهوم به در حکمش. در موضوعش که باشه و در حکمش وجود وجوب تبیان باشه و در تعلیلش هیچ چیز غیر اغلایی نمی بیدیم. همون نقطه اغلایی چی مؤمنین رو ارشاد میکنه از سیدم وزد آجات احضر سنت ما حصل الله تعالی حاضر امه بیگه حاضر امه راستان بست تو مسیحی ها نیست مثلا ما لوقا مثل بزرگانشون به سند اینطور مثل ما بیارن این رو هم ما معترضیم که این نقطهی بود که شارعه مقدس، اون تنمیه و رشد عقلانی به جامعه اسلامی دار. این مذهل رشد عقلانی جامعه است که خبر رو زود قبول نمیکنه. یک نوشته زود قبول نمی یا یا ایوالدین آمنو اینجا اکم فاسقون به نبهه این تعبود نیست این تنمیه عقله رشد عقله رشد عقلانیست و ازا این همه مبارس رجال و اصناد و طبقات و خیلی اممت ها تو آیه مبارکه طبقات نداره تو آیه مبارکه تمیز و مشترکات داره تمام این بحث ها رو اممت اسلامی از این رو شهرلانی پیدا کردن که این طبقه شمون این اسمشی این اسمش چیه؟ این, این ببینیم با یک آیه مبارکه و با مجموعه قرآن مجموعه جمعی رو ممنونی سامو دارد تو خداوند از اصولاً انبیاء را داشت تا درشاد یوشی و دفائن الاغود این دفائن الاغود رو قاب بندازم تفیج بکنه بیاد رو صحنه به ذهن را آمیر مبارک تعبد نداره تنبیه عقل نه تعبد روش عقلانی و اون اعتراضه است که یه نسخه خطی پیدا می کن صاحب مثلا 500 سال بعد از ارسطو میگه کتاب ارسطو نه ببین اعتماد ندون با دوغری این نوشه عقلانی ليلة تحفو جدا صلى الله عليه وسلم